ذات مره یک بار متنکر فردی که دارای لباس مبدل است لجنت تحکیم کمیته داوران یقول شرلی شبلن ذات مره شاركت شارکت و في مسابقتی من الافضل في تقلید شرلی شبلن ففزت بالمرتبه الثانیه عمل اولى فكانت من نصیب ابن رئیس لجنة تحکیم، چارلی چاپلين میگه یک بار با لباس مبدل توی مسابقه شرکت کردم که عنوانش این بود چه کسی بهتر میتونه از چارلی چاپلین تقلید کنه و توی این مسابقه دوم شدم و مقام اول نصیب پسر رئیس کمیته داوران شد